بگرانی عزیزو خوشویست سلاوتن لیبیت خوشحالین لعبشی پنجا چواری خوین نویی کتب چشت مجوری مکریانی حتی نوالتن، فرمون لگل بن. جار مکریانی، لوکاتی که جیانی خوی لا روسیا بسرد برد، بو مندنو سی، چو ما بو خارا، اویش وک سمرقند لشاره را کنکانو هر وک خوی ما بو، جگر لگرکی کارگران، بازاری قیسری تاریخو تنوک، بروش بر دبو چره لدوکانان ده حل کن، اوانده مزگو تو مناره لیا، پیو خیال دکه که هر بده مال مزگو تیکین هبوا، کولان سنگ فرشو تنگو با تا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 کوطلکانشی ل میدانی همو شران لبرابو ل مزگوتی که بخاردا کوطلکی مرمراستالی نمیدیت بدیواری مزگوت و حال پسی گوتم ای سقو مزگوت شار زمان ل شهردار و پیک بنایی شهیدوف سرپرستیک تپخانی شربو فارسی باج دزنی تعدادی کهش کردی سلیمانیان فیربوو دیگه، زورم جول الرادیو کردی بغداد تو او، لخام و فیربوم. لمسگو تی کجدا جحیلان بلیاردن دکرد. گویان مدرسه دینی به عربی، ال میر عرب هيا. بیبینە چیشتە گاڤر دا گەل شارەزایکا و علیوف چوین چن ملایکی ملئستوری جو رابو تێکستمراو لا ملبدرا و لا درکە سفیان بستبو بو بخێرھنانم چومەجور یەک مزیکی 20 لاوکی پتوی بشانو باهوی 18 و 20 سالا ھەرکە ساکتەبر لەپێش ماموستاکیان بەسەر و ھەڵوێستابو پیوتم من خریچی درس بوم بم باخشە با پیرتوانا ھاتم دايما ماست تكي مدا درس كات بله. ايشوتي داي كرم بسم الله به حرف جر مضاف بو الله يا اللهش مضاف عليه يا دستم هلينا وتم ما ماست ويتو قربان و دي هر امر رو دست كرا و به تدرسي عربي. آموزافو جر مره دبير دو اي دو سال تدرسي بو منابع اتري. باب من او پالا پالاوانان بچن تن لمزرع کرب کن لو چاتره کلیره یو لو جادو بگنن. ما موستا بمین گشت کی فرمو نه زنم جوینی پیدم یان چی ترمن چاو شیرینی خواردو در بازاری گندیانم گوندیان پیسر بو لروجه کی حوتودا به هزاران گوندی دینو لوید فروشنو دکرن زورم جنی با چارشیو رشو و دادید بلام من جنی اکم پیسی ایر بو که لو بازارا لبن روبندو که روبندکه وک حسیر دیواری وایا جگریده کشا دو کل بکونی روبندکه دا درده چو دادگود کارخانه یو کاردکه لو دمه دو کسم لیه پیدا بون گوتیان زیارت ایلیت بکرین لو دمه دا علیوف هاد نازانم چون حالات نو خوین ون کرد وچيان او ندیره قاچاخ چیبون سري شو دغل عليوف چوینه تري كرين تري زور خراب هبو كيلوي بهشت روبل وتم اگر تري چاكترم بدهي زيادت ادمي تري هر چاكي حسيني صاحب ل پش دوکان هينه كيلوي به 12 روبل شول عليوف پرسي توت يا زكت سي ا غوتي زماني تاتم هلبجاردو بلهم هيچم بو بهيس نكنيت کس نیه معنی و شکانی کردونه و بزانی. اگر تماشه هم کرد، کوره او هموی اگر فرسی و کردیو کرمانجیو لوری تیکلا. علیوف لخوشیان گشکی کردو، او شوه هموی بمانه و نو سینه لناو بازار دگراین راین نجار رایگ بلویری لنکی کچانی ده فراشد. یکی اکم حال گوتم بچند، گوتی یکی انگلیسی وقتو حال گریتو مجی کلی ده وی نه. آوا سن آتی اولاتی خواهم پیرکی رشد ریج چنچته که وقت موهشی زمانداری لپیش بو. پیامد ما ما آوا چیا وتی آوا وتم یعنی چی هر پریده یک زمان که خسته سر زمانیو ملیلیانا موسیقی کی زور خوشم دید پیامد فرم که دکرم هر دلیل فرم نبم دنیا یک من لکو باتا و پیمان پی اکنن گوتم شاهدوف فرمون دیار بول لپیا و محترم کانی شاربو، گویی چون من لباسار چند لیادم گوتم من جمن جنابه با خدا منش دبی بتوپیاب کنم آویش بددردی منشو بلام زورتر باوپیاب کنین لش هرزه کم پرسی اری شاهکلیرم مردوه بنایو به ها محمد نایناسي گویی نکش شاهد نقش بندد نیاز به وتم باله خویتی دست مزیارتی تلفونی با شهردار کرد، و تی، مرقد سی کیلومتر لشهر دوره، دلین چون که خارج سنوری شهره، نتوانین ار راگه بدنگ، و تم، تلفون پی بله کرده که میوانی نوسرانی شوراویه، دلین اجازه بده و نده هرده چم، تلفونی کرده، و. گو تی شهردار دلین من درفت اشتیوانایم، اواد ترانبیلی خومنرد پی بچن، لرگه چاوان با قبر امیر اسماعیل سامانی کود، که گومبزه کای لترزی مناریس سامرا او قبری ستا زبیدا درست کراوه وتیان زیارت گایا تکی شاهی نقشبند سبه بوه دو بشی چولو لکارکوتوو بشی کی او دانو مالکی زیروانی تی دایا قبرکاله حساره با سیمان بلند کرده بالا پیاوک پتر گویا حوضه کیش لحسر بو خلق او کن بو متفرق بردوه دولت لترسی میکروب نو او پره کردوت و شعره لجدان اون بو یکم جار لروسيا سوالکار یکم لدرگای مرخد دید صندوق نزره کیشی لابو صد روبلمتی هاویشت شافره که روسيا بو 25 روبلیتی هاویشت شهیدوف پرسی او مسلمان تو چی که روسيا شاید داگل زور کسان هاتون هیچ چین پولیان دو صندوق نخستوا بکاری کاری اما دلم گرم دهد، منیش بشی خوام تی خست لناو جادی بخاره دوامین سوال کرم دید که بزمان روسی دیگود هاون اشتیمانی، یاریدم بده. ایتر اونده روسیا بوم تازه چاوام بگده نکوتاو لولاتی آزباکستان که گرم و نرمان و براوا زوربه حاصلات پمو تریو مرداری و دغلودانی ولاتی شوروی لوی پیدا بی خلککی لچاو روسکان زور دوله مندن بلان بن شکرین به وقت آره بان پیسو چلکنن دلن پول یانددن بزی رجنانو معفورای باش ل هر کیش کام کاری زور گرانه کارگری روز دیکن مسلمانکان زور تمبلترن پی ام وا روز بره گورن جے خوتی زور بکارو زور خاکیو بدائن لابخاراوه تلغرافم بو حميد خسروی کرد که بيانی ساعت 11 وره او تل توریست لا تشکند ساعت 12 تلفون یک لیدا واتی ازبانی از حمیدم امکا کجار تا چوانی وات امکا که ببخشا حميد من صابلاغی نقصه اکا جنابت کی واتی کرو ازم از حمید دگل برزنیان جوابو زراوی اوانی حل گرت بویا و هی خوی لبیر چوا بوا حميد واتی مهندسی و ارزیاریم همون روز کدست من مزرعه چمدان دگل خم دبم چون که نیوزی جمعیان دگل دکم خوشیان دیو مو چمدانه کم بوپرد کن لبم یو بعینجانو صوزاد یعنی لدولتی داد زنو دیدن بمن در تشکن تشوی که ماینوه، جنیک للاین راژیوهات که قصیان باب گوتم با خون قصی اکم، پیک نهاتین، پش ماویک هاتوا، و, و تی، زورت که تلیه کن فارسی قصب که، چون که کسی و منیه من کردی ترجمه که، به فارسی هندی قسم کرد که من با مندالیل کردستان لچی روکی کردانه دا، زورم باسی سمرخند و بخاره بیسته بو. ارزون بو اودو شهره ببینم که حتی شم تیگه ایشتم که مولات جوانه سال های سال وک کردستانی خوم جیر چپو کی بگانه کرد با دیلی جیاون با جوانانی امرو داستانی کونه پیوان لبر کنو کاریک نکن بگرینو جیانی دیلی و کساسی و با دردی کرد نشن. سپاسیشم له شهر زکنی بخارا او سمرقند شوفیر روسه کرد جنکر رويشتو 400 روبل بو هنم بوتم بوخود علیوف و تماحکوت پیگوت زبطو دوربینکت بو حال دگرم قرسن دګالی رويشت که هاته اوتی 16 دستي برم تابر درګه مالوی چوم که زور دور بو لدرکشت کان لیور گرفتم ما چکی دا میو گوتې سپاس درکې دخستو خستو کالم دره چن پیه نبرا که موسکو گره نوا بو بفر رگی ندابو لفرگی تفلیس دابزین همو حنبالو گسک لیدارکان کرد بون لکافی فرگا سیکس ک علیوف یندن سیحات لامن علیوف بیه که نگو تو تا تاریکی زور قابلی بلانبدا خوزمانی خود لبیر چوه توا که برای خی علیوفی گرتو تو جوه نیپیدا و تی پیم بله چوانو توهی لید قبول نکم نا هرگیز دید خبون ناکم تاسوفه که این پیسیر بو، چون که تنانت گسک لیدری کولانی بخارش پیکو بروسی قصیه نکرد همیشه گلانی کمینا لنوزورینه بدا سالات دا دتوی نوا جا با را گورش وعی نوی شودرنگ یک گیشتین موسکو لباکور نصیب بوین سرمن بدن میدیوف و تی حریکیتی یک لشوروی بودجی سربخوی خوی, خوی هیا زیاد زیادلوی کسری سال بایدان و نتوانی خرج که جگلتوش زور میوانی نوسران لیرن که ارسکین کال دویال امریکایی یکی کلوان هاتوچو چو فروکه زوری خرجه ترجمان جگل مخارج روژانه سی روبلی زیادی ادریته بود زمان کز بوا ایمانات وانین بتنیرین باکو بلام اگر رسمن لباکو دعوتت بکنو لسرح حساب اوان بچی زور من پی خوشه مصرفی مترجمیش ددین لسر کرده که چکوال ایسپی نامه درود درو دریجم به خط اکی زور وردنوسی و دا پستم هاویشد. بعد ده دقیقه کوپی نامه من به دستی رحیم قاضی گیشته بود. دولتی باکو رسمن با پازداروش با اینهشته نیکرده بود. گوتم چون که خم ازربایجانی دزارم و کردیش زور لباکون ترجمانشم نوید. جهتا خم با سفر دنیم با مصطفى سلماسید پی نسینم. مصطفى شلمشي كوري حاج احمد شلمشي كلا شلمشي لايسردشتوا هاتبن صابلاو تجربه کی غر بود؟ مستافا لزمانی کمال داشت چوبو باکو، گیستو با موسکو، ببود دکتری دل، بالامکمن دیتم دکتری ن اکرد. یارم تی پناهندگیش اور ندهد. چاوشین، سرتاز تاز، باریک بالای باریک، تاو روز بود. هموکلینو خشبونی موسکوی پیدازانی. دگال زور لپیوانی لواخی، وقت سفیر اراک و هندستان و افغانستان ببود دوست. هر کردیکی بگی با موسکو، مستافا دیدی تاو زور ادا. ملا مصطفى زوری خوش دویست لو سوا کمن چوم آسایشگای گیرد سن تاهات مواراق همو کارو باری که دیوانو نوشارم او پیکی دینا ترجمه بوده کردم رگی مالکی راگی سعاتیک لعوتیل منوه دور دوربو. اگر لاشویش دا تلفونم بود بکرد بود خویده گه انده جنکی روسی ایرانوی هی نبود ترحی لمای منده دو کوری زور جوانی بود بناوی جیانو سیامند جنگش دکتری من دالان بو، اویش کاری ندا کرد، بگر کلفتی شیبو، کسبی که قاچاق فروشی بو. دگل رئیسی دنچگای کابل بو بو دوست، هر افغانیک لکابل و به هتیه تموسو لسر سپرده رئیسی دنچگاه سلماسی دادی تو. نزنم چون بو سلماسی بو بو سلماسی. افغانی زوریان قدر دجیره، چمدانی ندا مالی قاچاق وگزیر پالتو اسباباتی دیگه نه. سلماسی باید دتواند نوا، هر بینابین یک لبرکانی و پارچه فاسونی بناوی دیاری بودانشجو جو هد که اویش قازنجی زوری اکل. سررای رای سروکاری دگل زور لقاچاق فروشانی ولاتانی دیکی شوراویده بود، لیه چیش نه اترسه، به چوبای مالکی 20 پالتو دزبتی سوز بدهان ساعتو هی تو هوتی لسر با دیواره نوا بود، تنانت جاریک لزمان سفیر عراق درمانی به حزب جنسی در سفیر هند ورگرفت و فروشت بود. لپاش گران بو عراق با سالک بیستم که گرت ویانو ۶۰۰۰ دلار رو کلوپل لیگرت و او حد سالیان حکم داد. کپاش گرانو بر بونگی ایترنازنم چی باسرهاتو چه دکا. بر لوا بران باباکو گویی. همزه عبدالله الله کو نه رئیس پارتي د گل جمال حيدري سره کې کومونيست هاتون لای سالفوس که همکاله دولته اتکا کرد غوتی له باکو به په سلام لفلان فلان ارمنيب کا منيشوتم په چاوان لني ورويګ د افرغي باکو ده بزم حشماتي کې زور به ګول وحاتبونه بخیر وثائق لان اوتيل توريز دامي كوردا كاني ولاتي خومن لبكو دكتور رحيم قاضي علي گلاويش دكتور قادري محمود زاده وجنساب عبدالله برازه دکتور میرادی رزماوری کرماشانی حمدی ملو در چرچ که کنه زمانی کمالم بو یک جار زوری ازرباییزانی حوالی شم دیتنوا که لطوریز اشنا بوین فتحی خوشکنه بیش حت بو مالخوی لباکو وگل و توریز بموا بو پیوکی بناوی رایوشکاری شوراوی لما هباد بناو اسدوف هبو برادر که عراقی باقی بامرنی حرپی دگود کری خجکاره دیگو ف فایتونچی اک لعقره باونوها بوا، اما شرنگ لباکو فایتونچی بوا به، کچو بو ما باکو اوتیلچی چیبو؟ لو پیا وزلانی که باکوی بونو لتوریز دم ناسین، مرزا ابراهیموف که اودم وزیری فرهنگ ازربایزانی شورایو بوا، دویبوب و رئیس دولتو، او کاتا کچو ما باکو بناوی نوسریکی زور بناوبانگ ناسرابو، جعفر خندان که لتوریز شعر منی ترجمه کرد، پلی پروفیسوری پدرابو. دلم بدیداری او همو دوستو اشنایانه گشایوا شوانه تا ساعت یک دوی شو دورم چول ندابو که خلق بلاوه دکرد، تازه حمی مولود سرپیکی قصانی فت دکردو قد نیدهش ولات رونک دبو چورتیک بدم، قصه ربردو خوی بوده کردم داشه گود نوک بمرم توالبیر نچه بینوسه و 24 سال لو دم رابردوا حمی مردوه. منی زورم سرگروش تی اول بیرنمAVA، بالام هرچونه بید سرچال بود دچار گرانی از این رو خوشبین است. لیر دو بام شایعات حتی نکوتایی باشی پنجاه و چهاری خودنویخته بی چشتم جوری هزاری مکریانی تا باشی کترول لشی بی کترل دبیت ان دگین واه شوتن آرام کامرانو بختوار بچین.